رادیو دختر شیرینی فروش نویسنده و کارگردان ایرج طهماسب بازیگران فاطمه معتمداری تمام روز با آسمان قریبم سریا قاسم من من به تو قدیقن نکرده بودم به دختر من حق نظری به چه حقی سر تو هم داختی اینجا حمید جبلی بگی بابا چیفه تو من چیفته که تو ایرج تحماس نه یه خانم محترمی هستن اینجا اخ کردم به من جوابم نمیده قاسم زاره زشته به خدا زشته شناس نمایه این پسر رو بره زن بگیره یوسف تیموری بای مو محصبی شد بابا اومده با بود حالا عبار پرسی شما سلام نیلو خسرو احمدی خوابیده بیدار بود بیدارش کردم ببرمش منزل دیدم نفس نمیگه نشیقی محمد رضا علی غلی تحیه کنندگان مجید مدرسی حمید مدرسی مردی با موهای های و سبیل حددودا چهل ساله پیرمردی رو به کول گرفته و از خط عابر پیاده و از بین ماشینا عبور کرده به طرف دیگه خیابون میره. مرد کت شلوار مشکی و پیرمرد کت و شلوار سرمهای پوشیدن. پیرمرد یه کیف و یه عصا دستش و کلاه شاپو به سر داره. اونا در حرکتشون به کلانتری می مرد جوون میخواد وارد بشه که پیرمرد با خودش خودشو به بالای در گیر میندازه و با سرباز نگهبان دمه در صحبت میکنه. او باید سا بینم جعفر هست خیلی خوب خسته نماشی وارد حیات کلانتری میشه حالا وارد ساختمان کلانتری میشن و از چهار تا پیل مپار بکن آقابت دوستی همینه دوستی کم از نداره دوستم باید بره زندان برو جاله بابا جعفر ویتنامی چه چنده منو یا همون جناب سروان با سربازی صحبت می سرکار احمدی متوجه شدی داخل. پرونده رو سری تحویل داد سرا میگه. مرد و پیرمرد توجه جناب سروان رو جلب در رو باز میکنن و وارد میشن. یکی در درست که میبینی رو میبینی جانم کرد. مرد برمیگرده و عقب وارد سرباز میخواد شما بفرمایی درمان مرد و پیره مرد و دهنی در بد جوری گیر کرد سرباز بازم به اونگه سن با هزار زحمت به لخر وارد تو هنو سربازی؟ 20 سال سربازی من در ببند باز چی شده؟ جفر بازم شروع شد به ببنده در محیط کارم آقا میان سربان. سرباز سرباز سرکار هر چی شما بفرمایی اسم کوچی که صدام نمی کنن آقای ساعت چی اینجا محیط کاره منزل تشریفا بردید هرچی گفتید هیچ ایرادی نداره مفهوم آقا خیلی خوب جفر این پسر من دزده. من ازش شاکیم خیلی خوب بفرمایید بشینی شاکه این طرف متهمم اون طرف سر ساعت چی که پدرش رو کولشه جلو می میخواد پدر رو بذاره رو صحنهی سمپلاس که برمادی این طرفی اوه نه نه نه اونم تازه من پیاده مشو نیستم من پادردنم هم تام میام پایین خب چشم سرباز دستور دادن چه جناب سرباز جانم سرباز این نوهه خانم منیره چشم سرباز دستور شما تمرد میکنه چیکارش کنم این قسط چه نگه باشه من جعفر بابا این خیلی ناخلف بندازش حبساب کنه دخلش آدم بشه با کما نه درام بخوام بندازمش حبس شماره رو زمین بذاره یا نه پسر پدرشو روی صندلی میذاره و خودش روی صندلی میذاره چرا اومدی و جای تو طرفه بگی بابا کیفت من من کیفته چتا کیفت تو بغل خیلی خب بفرمایید حالا ببینم چی دزیده دزیده غلط کرده میخواسته بدزه سر بزنگو میچش آدمیه جناب صفوان میشون روزگار منو رو کرده من خودم از ایشون شاکی تو شاکی از این تو تو این زنزلی ایشون من شناسنامه ای... منو مخفی کرده شاید هم نیست کرده من خواهش میکنم از طریق مجاری قانونی از ایشون بگیرین خواهش پس اعتراف کردی اعتراف کرد برای دوزیه شناسنامه اماده نه برای زرزدن به پدر پیرت گیر امادم شناسنامه خودم رو سرقت بکنم نماسالفان میخوان تو اداره استخدام رسمین بکنن برای استخدام رسمی شناسنامه میخوان استخدام بگره؟ میخوان زن بگیره تو رو میخواد کنه زندگیره میخواد دختر اون ملعون دختر اون رستمیو میره همه چیو میخواد بده بگیره من از اونم جفر جعفر من از اونم شاکیام آیه ساعتی عزیز واقعاً که واقعاً زشته به خدا زشته بده شناسنامه این پسر رو بره زن بگیره پیر شد این پسر مم. پس تورم خریده رشوه گرفتی از ایشون چی؟ من رشوه گرفتم؟ من به مامور دولت در حین انجام وظیفه تهمت میذنی؟ میخوای چشاما و به اون کاری بکنم که تا آلا نکردم از اون موی سفیدت خجالت بکش پسرت میخواد برستن بگیره من رشوه گرفتم یه از پرمانه اتوکشو درگیره هر روز هر روز میاد اینجا شکایت تو شکایت کشی ده معنی نداره یعنی چی بفرما آقا بفرما این پرونده شکایت ها این آغاز. اص های اینجا به این پرونده میخندن اسمشو گذاشتن پرونده لیلی و مجنون چرا برای که این آقا 20 سال نذاشته این پسر با نامزدش ازدواج کنه قایمش میکنم تو کشم که نبینن به بنده و شما و ایشون نخندن برای حفظ دارید حالا من رشوه گرفتم بدیم شناسام رو این پسر بره ازدباش کنه زن بگیره این فرونده هم بسته بشه هم خیال شما راحت بشه هم من چون. هم اما خایی این مقرد مح... از اومدم بیرون بازم پیره من رو کول پسرش و نفس نفس میزنی؟ سیگار میکشی من تو عمرم سیگار نششیم آره تو گفتی و منم باور کردم خونه جدا یه رفتی واسه همین کنزم دیگه خونه جده گرفتم که گرگالای شما رو نشتم جواب بابا تمیدی؟ وقتی با کمر سیاه و کبودت کردم عدم میتنمی با چه چجوری صحبت کنی؟ خب ماشین در خونه بود سوار میشدی قشنگ میامدیم دیگه من سوار ماشین تو نمیشم از فردا سرم منت بذاری این بر اون دون بر فهمیدی؟ به نماشگاه فرش بهشت میرسن و وارد میشن از جلوی فروشنده چاق رد میشن مرد سویلی با تلفن صحبت میکنه و خریدار جلوی میز نشسته من تماش رو یک یه, یه رو خواهی مهندس اومد بر بله آقا چه چه چم ازش گرفتی با زمین دیگه اه. بسر ساعت بیرون پرشا میذاره و خودش خسته بغض. بردا صبحم میای منو میبری کلانتری یه سری اوراقم از دارایی اومده میای و فروش می من سر درد نمیارم. دیگه واسه چی؟ واسه اینکه میخوام از روسا شکایت بکنم واسه اینکه ملعونه واسه اینکه شکیاده واسه اینکه میخواد دختریشو به تو غالب بکنه. اینا یه چیزی به خوردت دادن جادو جنبل دادن واسه همینه خانواده تو بد کردی رفتی دنبال اون دختره. من کار دارم. گرفتاری دارم. اداره به مرخصی نمیده این دامادات بگو ببرانه سوشندارو میگه من پسر بازاد نکردم داماد من این برون برداره یه عمر دبای شما و رستمی زندگی من و نیلوفر رو نابود کرده آخه ما چه گناهی کردیم که شما با هم مشکل داریم چرا اینقدر با هم لجبازی میکنی؟ من لجبازم یا اون حوچی؟ بابا من که از اول موافق این ازدواج بودم من خودم بهت گفتم بیا بار دختر این رو سمیره بگی مگه من صفر اقد برات نداختم آخه شما صفر اقد نداختی؟ اما با شمدون زدی تو کله رو سمی نزدی؟ من با همه زدم اون صفره رو که من ناراحت شدم خاش خورد منظوری نداشت آره من منظوری نداشتم دستم خود خوب همه دیدن همه بودن دیدن شما یه عمر منو داری الافه یه ازدواج ساده میکنی آقا سعید آقا جون مشتری تو مقاز هست آقا مصطفی بهش بگو این شناسنامه منو بده من برم پیکارم کارم تمام نمیدم نمیدم تو شعور نداری میری زده ناجور بگیری نمیدم زن ناجور چیه میخوام با همین دختر راستمی اززواج کنم همین دیگه خریت شاه خودم نداره نمیدم برو برو هم کشم دوشو من تو رو آغت میکنم ازشی شعور داری میفهمی آقه والده یعنی چی؟ یعنی نه دنیا رو داری نه آخرت من آخرت ندارم من خدا بدادت بریسی آره من آخرت ندارم اما شما که آخرت داری میدونی اون دنیا کجا میبرنت؟ میبرنت جهنم بی چرا؟ چون من نفلی نتیادم، نفلی. داماد رو دا داماد خدا فت. از در مغازه خارج میشه. داماد سعی میکنه جلوش رو بگیر. داماد چاقم ساعتش روی فرش میخوابونه، پاهاش رو میذاره بالا و به طرف داماد دیگه میاد. حالا، حالا، اخ اخ بعد که از دوام رستمی شکایت کردم میفهم بچه چه من میگه فردا میریم چانه ساعتی آروم آروم چشماشو میبنده و میخوابه در مانگای بیمارستان میرازه آمبولانس توقف میکنه در اورژانس باز میشه دامادای ساعتی به همراه دو بیمار بر بالا سر یه تخت روان هستند ساعتی با چشمای به سقف دوخته شده روی تخت روانه بیماربرا به کمک دامادا ساعتی رو وارد بخش قلب میکنن آقای دکتر از راه میرسه دامادا رو دم در میبینه توضیح میخواد خوابیده بود بیدارش کردم ببرمش منزل دیدم نفس نمیکشه شما که عادت دارین دکتر مثل همیشه هست ناقصه دختره ساعتچی با بچه هاشون از راه میرسه شکر روش نکنید اینجا بیمارستانه چه خبر شده مستفا بگو ببینم شده؟ طوری نشده البته اناسی چی معلوم نیست خباس بگی تو دارو آقا جون به موقع ندادی دادم بابا هل نشو آقا جون که مردنی ای نیست هفتش بار سکته کرده مرده نه مرده که اما کورور کورور جمع سکته میکنن آه در جا میمیرن بابا ماشالله به این بنیه ناماده چاق میخنده توی اتاق دکتر در حضور دو پرستار میخواد با شوک الکتریکی بیمار رو احیا کنه دکتر شک میده. شکه بعدی ساعتچی میخنده و دوباره میخنده سلام بعدی ساعتچی روی تخت میشینه چه سرش گیج میره محشو. و دوباره قرش میره مغازی شنن شکلیش. دخترها و نواها و دامادا بیرون منتظرن داماده چاق آب میوه میخورن دکتر از اتاق بیرون میره همه به طرف دکتر میره چی شد؟ چی شد؟ تمام؟ به خیلی گذاشت نه؟ تموم؟ سکتر رد کرد گفتم خانم. دیدی گفته ماشاءالله به این بونیه ماشاءالله به ببردش خونه توی یه آمبولانس قرمز ساعت چی خوابیده و داماد چاق بالای سرش که یهو افت میشه سعید مصطفی آقا سع... جون چی شد؟ کجا داری میری چه نمینی مغازه برو سر کاره دکتر گفته شما رو ببرم خونه استراحت کنین آقا جون من پول آمبولانس نمیدم ها میخوای منو با اتوبوس بیاری به؟ من معنیه اینکه سعید حساب میکنه آقا جون مصطفا بله به این آمبولانسیه بگویی جدیسی کباب بگی دلزفه گرفتم دکتر گفته فقط مایه آتاقا جون گوجه یادت نره بگو هم خونشم بچوره نون سنگک باز میشه کباب و گوجه لایلانه توی خونه دخترا و دامادا و نوه های ساعتچی دور سفره خود ساعتچی توی یک اتاق دیگه سراندهش وصله و از پشت شیشه برگیره میگه فهمه چکای میکنه بر برای قدیم مستفا تنها کسی خود هم میگون بونی من مریضم من صورم دستمه من باید صفیه تو میگون بونی چشم باقا جون باشه آبو بله بابا پیازم گذاشتیم پلپل میخواه پلپل هم پلپل نمیخواه گذاشتی؟ الان داره میاره بابا بله چیکار کنیم بفهم در درد نکنه هیچ کارت داره آقا گشنمه منم آدمم بس یه لقمه چیزی بخور دست نممیری ذخیره داری در نشاور رو باكم مصطفی بناچار روی تخت ساعت چی در نشاور رو باز میکنه میلی به سعید میگه که آب دسته به زمین بیا بابات کارت داره اون که نمیاد آقا جون میاد آیه نحس نمیاد من بخواه دنبال نخدسی ها نفرس. بابا بهش بگو من یه کار واجب باش دارم بفهمه خوشحالم میشه خوشحال آقا جو. نکنه قضیه یه ارس و میراس و این حرفاز ها که تو خوشحال اه. میشی بابا کار واجب باش دارم بگو بیاد میخوام شناس تعویلش بدم چی؟ عوضی؟, عوضی؟ بله نظرشون عوض شده مصطفی اگه راست گفته باشی من یه روزم تو این خونه نمونم من حوصله کاسه کوزه شکستن و جنگ و دعوا و عقدای روسی رو ندارم. آخه ای خدا مگه ما چه گناهی به درگاهت کردیم که بعد اینقدر مصیبت بکشی؟ چقدر اخ چقدر عروسی چقدر خواستگاری 20 سال بس نبود. کامیون جلوی خونه مشغول بار زدن اساس خونه است. دوتا کارگر دو سر دوشک رو گرفتن از خونه بیرون میان و اونو به کمک همکار دیگرشون که توی کامیون بار میزنن پسر جوونی هم اونجاست. سعید توی خونه توی آشپزخونهش با یه دختر بچه صحبت میشه کسی نیست بگو ببینم حال خاله نیلوفر چطوره؟ گوبه شما بچه ندارین من که هنوز زن نگرفتم میخوام با خاله نیلوفر رو کنم نشده من خودم میدونم خاله گفته اون چیه دسته؟ شیرینی. دختر بچه یه جبه آه آهنی قرمز مالشما. از دیر نیز بیرون بره و درش رو باشده پسر و جوان وارده آشپس خونه خون. میاد مم. و به همراه سعید در کنار مم. اون مشغول خونن شیرین میشه به به به شما خوش میگذره دیگه ما اینجایی داریم بالا پایی میریم جون میکنیم شما در اینجا داریم شیرنی میخورین آل مخانو مخصوص مخصوصم که داریم میخورین رسال نیلو فرد چطوره ما که ممنون ملاقات شدیم ر؟ خوبه اون هم شما پسر خونه آقای رفقتی میاد جنگ و گفت جواز باید بمون اینجا ما به خبر باید بیم ساعت آ چه خبره اینجا؟ این چه وقت سی آقا؟ جدا نفتی شعیر خان در دیوار سالم تو راه رو نذاشته نه.خه چند دفعه این جااز رو میبریم میارین. سلام های آقا خیالتون راحت میه. این دعه دیگه دفعه آخری که ما جاازو میبریم. مادرم گفته که دیگه ما این داما رو دیگه. نه خند آقا یه دفه میبریم میگهن دفع آخره یه دفه میارین میگین دفع آخره. اگه من خاطر پدرتون نبوده تا حالا به تاخیر گرفته بودم مصطفی با دستای روغنی از داره این تابلوتون که انقدر قورقور میکنه یعنی آسانسور درسته می چه خبر اینجا حسابوکشیه چرا جازو میبرن سلام سلام میتی فنچر کردم دستو اینجا کجاست بغل مصطفی میره توی دستی آلما حمید المارا پوشه حمید المارا رو بغل بهتر بریم دیگه الان مرتضی مصطفی میاد چیزی میگه هم شما ناراحت میشه اما بقیه کار هم کارگره انجام میدن من تو ماشین نشستم میبینمت خدا فزنم خدا فز یه کارگر بقیه اساسا میاد مصطفی از دستشویی بیرون میاد مصطفی پشت میز میشینه چه از این خانواده ای رستمی متنفرم این پسره اون جایش بابا حمید بچه بعدی نیست که اون جایش اوه یک مارمولکیه اون اخلون آخر که یادته باد کل زد اینجا حسابش میزه زده تو پیشونی مصطفی چی شد از این طرفتش ببردی؟ <تصفيق> میخوای باور کن میخوای باور نکن آقا چونت با ازدواجت موافقت کرد چی میگی؟ خب نما شده <تصفيق> خونه ساعت چی؟ پسر جون میگم بیا برو با همین دختر شیرنی فروش عروسی کن شنستان ما بده خیلی خب بابا واسه همین صداد واس همی کردم بگه درمه کجا گذاشتم ساعت چی یه صندوقچه میره درشو باز میکنه بلای که آغازو دنبال شنستان ما میکنه خواب دیدم یه خواب خیلی عجیب توی چمنزاری پر از گل و بلبل و دار و درخت نشسته بودیم پیش یه ملائکه یه سفید بین قرص ما بگو خند و گل بگفتیم گل بشیدیم یه به ناقافل و من گفت اسم جنابالی چیه؟ گفتم غلام شما تغییر ساعتی هستم تا اسم منو شنید حالش عوض شد رنگ شد عین قیر سیاه دو تا شاخ درورد این دیب دو تا چشم عین این قاشیه یکی رفیم بر یکی رفم بر خوف ورام داش به من گفت بیا بریم گفتم کجا یه دیواری رو بهم به نشون داد پشتش آتیش هر هر زبونه گفتم کی دنبالش هستم گفتم که چار ستونه بدنم لرزه نه این هم که نیست گفت نفرین پشت سرته یادت بچه بودی از این پیشیه میترسیدی پیرمقدونه <تصفح> گفت تو جوون نفرین چردن چطور زین رو بعد وصل نمک نفرین سر جاش در کومد این منو ول نمیکنه که چیزی دست کردم جیبم یه هزاری بود یا نمی‌دونم 20 بود. خلاصه‌ گرفتم طرفش رو گفتم این باش پیش شما تصویر مغازه جبران میکنم چه جورابم رو تو تا اینو گفتم خیلی ناراحت شد. دراز شد، سیاه شد، دست انداخت پز یقه منو گرفت، چرخون چرخون چرخون ول داد طرف آتیش چه آتیشی، چه آتیشی. داشتم الو میگرفتم دیدم یه کیم بغل سینش هی می ور میزنه برگشت نگیدم می ای گفتم شما کجا اینجا کجا اومد جواب منو بده از چه شو گوه شد دماغش ما را زدم بیرون حال ببین اون چه قیافه ای هست که منم از چه شو گوشش بزنه بیرون روی کماد <تصفح> تا فردا شناسامتو پیدا میکنم میدم به ساید چیگه روی صندلی بود پایین میاد سایدم کمکش میکنه تا بشینی روی تختش شناسدام هم که پیدا نه <تصفح> چه ضمانتی وجود داره که نید دوباره تو عقد و عروسی اینا بساتو بکنم مرده شبی مگه یخشون خریدی ضمانت میخوای فردا بیای میبینی اینجا خالیه و دیگه بابات نی بیا ماجد کنم بیا سعید ناراحت شده بیرم شگار میکشی؟ سیگار چی ها؟ بود سیگار خودتونه شلوغش قسمونه برد حرف چه مداره میاری؟ حقا که حوچی هستی تمو تو به درد اون خانواده میخوری چند نفر میمانداری؟ شیرین فروشی خانم رستانی و خانم رستانی خیلی شیک پوشه کارگر شیرین فروشی جلوی در رو آپاشی میکنه آدرستتون دارم خیالتون راحت بشه میفرستم خدافز بله بله بازی بله بله ناچت هیت نگفتم اول جارو کن بعد به شوشر اینقد آب مصرف می‌کنی چش چش من باطاری تمام یازان چه خبرته امیت پیاده میشم همه وسایل بردی؟ هم و طبق لیست چیزی که نشکسته بود. نه هیچ نموند بعدای سر این خونه وا بیارم تا دیگه جهاز بسفسه حالا شما خودتون گفتین جهاز بیار تو بچه از هیچ چی خبرم میگه و میره توی مامان حمیدم نفسی میکشه و پشت سرش وایم. مادر کسی نازت داره من؟ نه. مادر پشت درخ میشینه و حمید رو وسایل میخواد و میخواد خوشی سفید بپوشه. همینجا نزدیک تو کوچه پایینتر باید ببری بابا. بدی. این بابا این بابا من خستم مادر رو خب بابا دو دقیقه بذم من استراحت کنم یه بره بیا برو بیا. خب منم خستم مادر. اون دختری بیچارهم خسته است. میگی چیکار کنم؟ nilu اون چه کاذره؟ سمت آشپزخونه می نیلوفر دختر خانم رستمی که دستکش سفید دستشه مجسمه عروس داماد رو با کمی حسرت روی کیک مادر و پشت سرش ازخر از یه تینجه بکش کشیدم این مودل سنجش نیلوفر ازراف کیک رو تمیز میکنه واح واح چه کردی شتره پتره کمک کن بذارین تو ماشین چه باش سکش مواصف باش جل. از خر به کمک نیروفر میره عجل. و به طرف کیک سه طبقه رو میگیره و از آشپزخونه بیرون میبره همین پشت وانت نشسته بجو. و نخواد در رو باز کنه که نماشه خانم رستمی و بمکن. بعد نیروفر رو از با کیک بیرون مواصف باش در پشت وانت هم باز شد همین کیک رو میگیره و نامتادل میشه که بزنی میریزه بیشی خودت نگره شارم من میرونم مباظه ما روزی باشه من برگزارم مادر فعل با. که بابازم تصادف میکنن بابا کسی که رانندگی رو خودم یاد دادم پس خیلی با عجله و عصبانی میره و پشت فرمون میشینه مادر طول خدی یواش بریو اوه با اینجور حرکت کردنش حمید و کیک نزدیک بود بیوفتن اما حمید تعادلش رو حفظ کرد نیلوفر حالا تنها شده و جلوی مغازه درفیوز چشمون هم به درد مونده است به پنجره به نور و آنقدر دلم میگیرد میره تو تمام روز با آسمان غریبم با هووا پاک با شکوف های درختان عشق ها و اشکا و نه ازخر مشغول پاک کردن ده... شیشه مغازه است سعید با پرایز سفیدش از راه می رسید با یه دسته گل پیاده میشه و به طرف مغازه میره سرکی توی مغازه میکشه کسی رو نمیدونه از تازه متوجه سعید میشه سلام علیکم از هر اقا خانمسته مینامیستن؟ نیست نه همید آقا نیست نیسته همید رفتم بیرون برمیجردن اما نیلو پرخانی چی؟ هستن هستن پایین داره کار میکنه دو تو مشتری میدونه بفرمایی سلام علیکم بفرمایی بفرما. بفرما. سعید از پشت مغازه از هفهش تا پله پایین به دریچه کوچیکی میرسه حفاظ مشبکی داره. سعید روی پنجره میسه و از دریچه داخل آشپزونه رو نگاه میکنه از بین پرهای هواکش نیلوفر رو می‌بینه. نیلوفر سر بلند میکنه و سعید سعیدو می‌بینه. سعید خوشحال لبخند میزنه نیلوفر بلند میشه. خیلی خجالتیه سعید از لای در سرک میکشه و وارد میشه. نیلوفر خودشو مشغول کار میکنه میخواد روی یک کیک شکلاتی خامه بریزه. سعید با دستگل نزدیک میشه. سلام آب در دهان نیروفر خوش شده و نمیتونه پاسخی بده سرشو کمی تکون میده. سعید متوجه میشه که گیفی که نیلوفر دست گرفته اصلا خامه توش نداره شما لطفاً بفرمایید این بالا اگه مادرم بیاد حتما نراحت میشه چش سعید شما نیلوفر دلش می و یه دفعه تلفون کجور نکنه بر خودم آره آره آره سعی کفششو در میاره و میگیره دن گوشش الو بله بله نه یه خانم محترمی هستن اینجا اخ کردم به من جوابم نمیده تو دلشون دارن میخندم ولی خب چه با چه دن تو بو میده کفشو میده الو نیلوفر حسابی خندش گرفته پدرم با ازدواج ما موافقت کرده من باورم نمیشه راست الو الو بند کفششو رو باز میکنه بلند میکنه و میگیره روی سرش خیالی رو ادامه میده کفش رو زمین میزه رو میپوشه خنده این نیلوفر هم قدر میشه پدرتون موافقت کردن؟ برده بودن جهنم تهدیدش کردن چوهایی بلند آتیش بشت نشوندن گفتن اگر این وصلت صورت نگیره نیلوفر حل میکنه من آمدن قرار روز عروسی رذارم شما بفرمایید بالا چش یه خانم محترم اینجا تو دفترش داشت شعر می نوشت یه شعر جدید میخواد دفتر شعر رو برداره نیروفر میخواد جلوشو بگیره رو که یه ظرف پر از نقل می خانم خانوم با وانت از راه می رسه امیرم بقل دستشه خانوم رستمی پیاده می شه و همچنان عصبی و خشک به طرف مغازش می ره راید سعید رو میبینیم ماشین رو شناخته آه آه آه. میره تو مغازه سعید توی آشپزخونه کمک کرده نغلا رو جمع کردن نیلوفر از روی دفتر داره برای شیر میخونه تمند. خانم رستمی از بالای پله ها اونا رو در اونجا چه خبره؟ بیا بیرون میبینم اینا ریخته بود داشتیم جمعش می کردیم اونی که ریخته آب به روی ماست مک من به تو قدقا نکرده بودم به دختر و نق نظری به چه وقت سرت تو آین رو باید اینجا؟ من گل بردم برای شما.ورد کلا بردمقدری گ بوده می خان دیش بری دست گل و پرت میکنه تو صورت سعید سعید فرار میکنه نیلوفر کنار مایشه. مادرش وردنه رو ور میداره یه پاکت آاردم ور میدار کار خلج کرده با تو؟ کارش رو سیاه میکنم به اون بابای مردنید بگو مگر اینکه چشم بهش نیفته حمید زن بزن کلونتری بیانیره به اون الان سه تا خیابون اون ورتره حمید میخواد بره. پس کجا داری میری؟ وگه نمیگه برم می ببینم کجا رفته دیگه؟ حمید از پلا بالا میره. نیلوفر گل پرپر رو جمع میکنه. واسه شعر می میخونی؟ آخه این خیلی اوت داره؟ هر چی میکشم از دست تو کشم رو پرت میکنه. گل بیگنا. عشق بیرحمانه شما را شب شده میکنه... نیلوفر توی خونه نشسته گلای پرپر و شاخهای شکسته گلا رو یکی یکی برمیدار و شعر میده شما عاشقانه می سوزهیه جا ن مادرشم طبقه پایین عصبی از روی لیست جهاز آورده شده رو چک میکنه یهعالم کارتون و وسایل تفاوته این جا نظرین تو نداشت خانون قرار میکنه جهنم که قرار میکنی مگه من چی کار کردم هرچی گفتن گفتم چشم هر کاری خواستن واسهشون انجام دادم من چیکار کردم عقد عروسی رو اونا به هم زدن یا من حمیده تارا کجا بودی سلام آمام مگه بهت نگفته بودم ببرش چنون باش باشرفتی گردش آقا سعید مامان مثلا دامادمونه بابا من تازه امروز فهمیدم سعید انقدر میسره گل یاد کرده <متصفيق> نیلوفر با گل دون و گل پایین وای بابا معصبی شد بابا اومده بود حال و پرسی شما سلام نیلو به جون عمرات میگم دلش بیشتر برای شما تنگ شده بود تا نیلو به جون عمرات میگم حمید مادر دو سر یه کار داشتن میگیرن و بلند می کردن یه کلمه حرف از سیر نمیشه کشید بابا چرا اسمو خدا بیامرز و بسد میکشی خب انقدر کار نکن که خسته بشی قلقوش سلام بزنی خفه بچه‌ چیکار کنم چی اوباد ببرم؟ ها رو, رو. نه بگیر ببینم. رو اول ببریم. آی ماما بیچاره باباش مرد. چی؟ مادر کارتون رو ول میکن رو پای پام شکست. چی شده؟ چی برده؟ بابای سعید دیگه تقریبا یه خورده مرده. درست حرف بزن ببینم چه اتفاقی افتاده. وقتی داشته به سعید وصیت کرده که تو باید با دختر نجیب خانم رستمی ازدواج کنی. بعدم دراز به دراز میفته زمین و میمیره. البته تقریبا تا یه حدودی. بعدم که پسرش فرستاده خواسته اونو که غلط کرده فقط به من بگو مرده یا نمرده. نمیدونم. نه, نه. نه شوخی کردم فکر نکنم مرده باشه سر کارت گذاشتن. ولی خیلی دلت میخواست بمیره نه؟ صبونتو گاز بگیر بچه من کی بده کسیو خواستم؟ دانبا حاضرم به مرشم شوخی کردم بابا نه مادر تو ماهی ماه شبه چارده تو بلند شبا استراحت کن دخترت همه اینا رو جمع میکنه خودم اینا رو جمع میکنه تو هم خسته ای من خودم جمع میکنم ب... نه پس همه جمع بیا مامان یه خورده قلقلق میگوش همید از بود مادرش رو قلقلق میگوش خود بگیر به خواب و الله شیرم و حلالت نمیکنم مادر میکنه خب هلا پسره چی گفت ایچی مامان گفت باباش موافقت کرده دیگه حالا دیگه من گفتم شما موافق نیستی من کی با این ازدواج مخالف بودم اما الان دوباره اگه بخوان بیان کاری من شرط دارم چه شرطی؟ شرطش اینه که باباش بیاد بگیره بیشینه لام تا کام حرف نزنه لاله لاله لال اگه دخالت کنه حرف مزخرف بزنه یه گلدون فرق سرش ساعتی با پیجامه و با یک فرقون خاک توی حیات حرکت میکنه سعیدم گل به دست ایستاده. آقا جون بر نسبت غلط کرده واسه شد گذاشته مهی دخترش بیرچید باردانه که دستلمون گسش بلرزه مگهش نگفتی آقام رو به قبل افتاده فقط شما ماشاء الله هیچیتون نیست. داری بیل میزنی؟ من چیزی نی. دو به من گفته تا تاموست دربم نرو لجن بسازید. اینم که میبینم. فاشش میکنی؟ این صادراتیه. باز خواهی بکنم یا نده؟ اینالله <تصفح> باز پوشیدن اونجا قرار گذاشتیم بعد آقاشم. آقاش. آسم ببینم شما وقتی جام شدین دوره من بریم کار. بابی به طرف دامادم. اونها هم پا میشن. خانمهاشون هم دوم سعید میخواد پدرش رو بگیره. ساعتی بیلو پانت. بابا من حالم بده من مریضم من دستمو نمیتونم تکون بدم کجا بونم چم بیا بخه من بیام اونجا میفتم سقط میشم نشم میفته رو دست اون زنه که هوچی از فردا بلند میشه همه جا جار میزنه که خودم جمع و جورش کردم خودم فکشو بستم بابام کجا بیا من هشت بار رفتیم خاطه‌داری بس دیگه توی پلاک سعید میشه من خواهش میکنم از شما یه بار دیگه خواهش میکنم بچگی زبون نفهم من مریضم تکون نباست بخورم اینی هم که الان تو آیه تمامن آنتراکت که اونم تموم شد روی پلاو ولو میشه همه هم قرب. سعید پدر رو بغل کرده توی خونه می. بدر گیوهاش دستش. سعید پدر رو روی تخت مزن تخت مزن اون سرنگ بزن به دست من سروم رو میگه اینکه سرام نداره که خالیه خوب همون بشم قوت قلبه بری سر کوچه بچا پرش کنن من که میدونم بهونه میاری که نیای من بهونه میارم من بهونه میارم من سرنگ هم بعد بشه سن بهم وقت بشه دو دو گفته گارسون در جتت کو نخور من بهونه میارم میخوای منو ببری ببریم چری میه ببر یه پیکان که دامادا و دختراتوش پشت سرش آمبولانس قرمز که ساعت چی با کدو شربار توش خوابیده سعیدم آخه یه نادون کی باباشو به امبولانس می‌بره خاطی داری من معذرت می‌خوام از شما اونجا رسیدیم خواهش میکنم چیزی نگیم واسه نادون چیزی نگم هر چرا دهنم در بیاد می‌گم ليشار بارش می‌کنم من معذرت به این دفیق آمبولانسیت هم بگو آر جی نکنه که همه شر بفهمان ما داریم می‌ریم خاطیگار یه دختره یک افریته خیلی خوش اومدین سرفرازمون فرمودیم بیمار برای تخت و حرکت میدن دامادا هم بغر تخت مستفا مصطفی هل میده عباس سرم دستشه دختر و سعید پشت تخت هم حمید به استقبال اومده از اونجاست دامادا میخوان خوان ساعتشی رو بلند کنن نه بسی بابا تا آقا شما خیالتون دیگه بابا کاشمی برین ربیم تو پیاده را دیگه شما استراد کنی آقا جمعا بفرمی بفرمایین خانم حمید و سعید دفتران باشن خب در جون میگفتی ما خدمت میرسیدیم مگه فرقی میکنه من که اصلا اهلین حرفا نیستم بله آقا جونم خودشون اصرار داشتن که من حتما باید به این خاستگاری بیام بله خب من ده. به پدرم خنیدم با تو ما دیگه مام دلمون به این چیزا خوشه حالا اخوی تشبه باردن خدا بعد نده به هر صورت بزرگواری کردیم بنده نوازه کردیم بفرمایید وای شما... چه گدایی خیلی خوشگله دد کردی حالا شما چه سلام شما چه دوست بیندارید قربون شما صفا آوردی چطوره دلگونی شما بفرمایید تو رو خدا بفرمایید با اجازه خاطر بفرمایید خوبی خواهد واه پس چرا اینجور ساعت چی نیم خیزو میگه شما مثل اینکه خیلی ناراحتی الان یه بالش براتون میارم میره که بالش بیار نیروفر که زیرست بالاست از بابا تالسی دست لباس عوض کرد من لباسم رو بپوشم تو ببین قشن میشم الان اینو پوشیدم خوبه؟ نیلوفر خودش رو جلوی آینه نگاه میکنه و دست آلما رو میگیر خلاه نه اونو گذاشتم برای امون سعید بعدا بهش بدم به کسی نگیاد خانم رستمی با یک بالش قرمز توربوزی شده میاد پشه سایچی بالش جهاز عروس خودتونه ببینین چه قشنگ دوخته اینو میذارم پشتتون راحت 적... اخ ترک بهتر شدم دست شما درد نکنه دراز کشته بودم نفسم بارا نمیامد آخر یاد بگی از خانم رستمی آخی جون ما که هر کاری بکنیم به چشم شما نمیاد <تص il kyden revision> ان عروس خودتون میاد هر کاری داشته باشین واسهتون انجام میشه ان شاء الله خانم رستمی من همیشه گفتم این دختر شما خیلی دختر خوبیه داری، تکمیل ادب و سواد همه چی از هر هنر شما یه ریزمبرس برده باشه ها اثر مام زیادیه هیچ علاقق نمیذینه هر کی هر چی داره از پر قنداقش داره مثل این سید آقا که نگاه کنین ما یه چه آقاست، غیر داداش؟ نه، اختیار دارین، دختر شما هم خیلی خانومه آقایون، نمیدونین چه خانواده‌ای هستن این خانواده ای رو سمی... مادر نیلوب از کجاست؟ همینجاست خانم نیلوفر، مهمون داری؟ چایی برامون نمیاری؟ خجالتیه دیگه <تصفيق> خانم ما اینجا چایی زیاد خوردیم شیرنی زیاد خوردیم نمک گیریم بهتره بریم سر اصل مطلب من ده تا عمرم به دنیاست آرزو دارم سعادت این دو تا جوون رو ببینم خب این چه آرزوی همه ماست این آقایون محترم که زحمت کشتن تشریفا بردن از دوستان سعید خان هستن سلامت باشین علَم کار دارن کیشیک کی دارن اگه مطلبی است بفرمایید وگرنه که مبارکه والا چی بگم یعنی خوشحال بلند میشه, میشه. نیلوفرم با یه سینی چای میاد آلما هم کنارشه و عروس خانم هم که اومد به افتخارش ما ماشالله, ماشالله. شاییتم که خوش رنگه اگه طعمشم خوب باشه دیگه نور نوره این سین اختر من کاره بله. در از توی جیبش یه دستبند طلا داره اول بشته <تصفح> دستبند طلاست واس دست کنم شگون داره دست بیا جلو اخ اخ بشار بازم که این دست آخ ما اصن یادم نبود اینو بچی نه هم این طرفه این دستبند ماجرا داره نه نه ساعت چی نمیشه بدین من خودم ببینم نه خا روم شب که معلا داره چه تلاش 24 ایاره دختر جون تشریف آوردی منزل ما و عروس ما شدی تو اتاق خودت بذار که گور نشه یه موقع آپولی میشه دیگه مگه قراره بیان پیش شما زندگی کنم اتاق براش درست کردم مثل دسته گر جهازشو چیدم بیاین ببینین چه قشنگ شده اگه به اتاق که خونه ما دریای اتاقه این تکون نده هر کدوم و خاص ورمیداره داره واس خودش این یه رسمه داماد دست زنشو میگیره میبره خونه خودش بله ولی این مال هنوز هم هنوزم همینطوره بنده پسرم که داماد سر خدمت شما نمیفتسم که این چه طرز حرف زدنی اینجا خونه خودشه اگه خونه خودشی که پس بندم بیام اینجا دور هم زندگی کنیم دیگه داماد تو خونه خودش ارج و قرب داره مردم لیچار میگن دیگه میگن پسر ساعتی رفته نوکری خویم رسامی شده نمیگن حاج خیلی معذرت میخوام خانم رسامی خیلی ببخشید ما که با هم صحبت همونو کردیم چند ساله نه قرار اینجا زندگی بکنیم نه منزله من آداب بومم من دیگه عمری برام نمونده یه چند روز دندون رو جگر بذارین من که کپه مرگمو گذاشتم با هر هر غلطی دلتون خاصو کنین چی این چه طرز حرف زدنه؟ ناراحت نشین منظور پدر به من بود باشه نمیبینی هر چی تر تربیت میگه ببینین اختر خانم من دختر خونه پدرشوهر نمیفرستم هر تا بندم پسر خونه مادر زن نمیفرستم میخوایم بدین خودم ببندم ای انقد مثل مادرت بی نباش دیگه تموم شد شولاخشم گم کردم همین دیگه نعیمه دخترمو دارین عذاب میدین چه برسه بیاد اونجا زندگی کنه این عذاب دارم دستبند تلا دستش میکنم این عذابه این دختر ما دستبند تلا نخواستیم باز شروع آخشا. کردین که بابا این حرف بدیه من میگم من. خونه ی دو ماده حرف بدیه چه بیاد کولپاتی تو رو بکنه که بیاد زیر پای تو رو جمع بکنه خدا روز ناره چی شد چه تو پسر من بیاد نون رو ماس دیگه خونه ی شما بشه که مگه این خانو دیرجی برداشتونه ما دیگه دیگه ما اصلا حرف همدیگه رو نمیفهمیم اون جواب من منفیه راضی نیستین بگم چیزی نگفتن که چی میخواست آه... بگه دیگه خانم؟ ادب سرش نمیشه شما ادب داری که اینجوری داری حرف میزنی شما عددی آه... نیستین واسط بیشین آه... باشه ولا بسو مشو وات دبش بفرمایید بیرون بیرون شیشا شیشا نفهمیدن خیار میتوری منم گوسمی هم هر چی خواست بگی ما هیچی نگی شی پشت سر شوهر با نف نزنی ها میznam چرا نظرم همه میدونن که از دست تو دغد جت ما با همین بالش خطر میشه ساحت چی دست توی جیبش میذاره و از تخت میپره پایین کوتاشو در می به ساعتی چی حمله میکنه بقیه هم دعوارو شروع میکنن آلما پشت صندلی قایم میشه مصطفی و دایی با هم درگیرند. نیلوفر قفس کرده یه گوش ناخوناشو می‌خواد. عباس و اسقر هم با هم دیگه درگیر میشن که بیماربرا جداشون میکنن. آلما حسابی ترسیده بیچاره. خانم رستمی ساعتچی رو روی تخت انداخته و بالش رو روی دهنش گذاشته و میخواد خفهش بکنه. ساعتچی دستو پا میزنه. اختر میخواد به کمک باباش بره. زندایی نیلوفر نمیذاره و باهاش درگیر میشه. کلان تاری. همه با سر و وضع به هم ریخته ریختن سر جعفر. همون سرمان کنانتری و براش دارن برایش توضیح میدن موهای جفرم به هم ساکت ساکت خانم چه خبرش که؟ جفر این باید دار بزنی تا عبرت همه زنای بد اخلاق عالم بشه ساکت ساکت خانم ساکت دوباره ساکت بفرمایید بشینید خانم بفرمایید بشینید ایشیت آقا بفرمایید بشینی آقای سفره بشینید آقا آقا خدا بهش پشت <تصفيق> سر دکتر هر شکاست. همینجا از قلم سرکار سرکار احمدی با همون بالش تور دوزی شده وارد اتاق میشه. بده قربان. گزارشی شد آقا؟ <تصف> الان میانم قربان. اون متکای مسخری چی گرفتید دست؟ قربان این آلت قتله. این خانم خواست که <تصف> با این متکا فامیلتون رو خفه کنه. بله جنب سرون تو. پس باشه. واقعا به این اخلاق و رفتار واقعا که واقع که، آقا گزرشتونو بنوزید چهست قربان آی سحچی شما قربان خانم رستمی شما احمدی با بالش میره بیرون و از جلوی سعید و نیروفرد آروم بای نیمکن رد میشه من راه روی این کلان را خیلی دوست دارم چون فقط اینجا میتونیم با هم تنهایی صحبت کنیم کاشی سلول از اینجا رو به ما میدادن. تا دوتایی با هم خوشبخت زندگی کنیم حبس ابد یا موقت؟ ایش شوخی نکنین من جدی میگم من فکرامو کردم بیایید با هم فرار کنیم سریع متجم نگاش میکنیم بریم همون جایی که شما برام تو نامه هاتون نوشته بودین جای سرسبز کوه درخت جنگل پرنده آخه نمیشه شنستان دست بابامه خب ازش به دوزی تو کلم تری حرف دوزی میزنید آخه پس ما چی کار کنیم صبر. همه یه حرفای شما به من امید میده من برای شما یه شیرینی پختم از همونایی که خیلی دوست دارین می که خوشتون بیاد. کوتی شیرینی رو از کیف در میاره درشو باز میکنه سعید دو سه تا بر میداره و یکی شو بزنید میلوفم با خجالت رو و به سعید نگاه میکنه سعید از خوردن شیرینی لذت میداره نیروفرم خیلی خوشحاله توی اتاق جناب سربان ساعت چی؟ در گوشه آرون و در گوشی و جعفر صحبت می خانم روزنمی چپ چپ رو باشون کنجکاوه ببینه چی میگن؟ بقیه هم کنجکاوه جناب سربان گذارش آماده است خیلی خوب ورود سرکار احمدی با بالش اونا رو به خودشون میاره خانم روزامی بنده میدونم که شما به سرنوشت دخترتون علاقمندین همینطور که آقای ساعچی مندن که این وصلت هر چه زودتر صورت بگیره بنده یه پیشنهاد دارم اجازه میخوام که شما اجازه بدید که این اسباب و اساسیه و جهیزیه از منزل شما منتقل بشه به منزل داماد که تازه اجاره کردن فکر خوبی بله. آقای ساعچی هم و فقط خودشونو اعلام کردن من بدون دخترم نمیتونم زندگی کنم خانم ایشون هم بدونه پسرشون نمیتونه زندگی کنن نه معنی نه نداره قربا مادرمین که موافقه. موافقه چی رو موافقم حمید از مادر خواهش هم میکنه هم از جانب شماست هم از جانب ایشون برای خیر و صلاح فرزندانتون خانم م... موافقم بله هر هرچی صلاح؟ آلیه مبارکه مبارکه چه مبارکه چی مبارکه جفر چه زمانتی وجود داره ایشون این وسایلو بفرست خونه دامان من زمانت میکنم آقا یه ساعتی بله غربان شما بفرماییم برای راه اندازی یروسی مفصل اساسیه دوباره بار کامیون شده ماشین نیروی انتظامی و در معییت دو مامور کلانتری در خوابونه تهران به طرف خونه بخت میره خونه داماد مصطفی به کمک یک کارگر کاناپه رو بالا میاره صاحب خونه آقای رفعتی هم بیستادن اینجوری بسخت نمیشه که من نه این ما علیکی وام می‌کنم میشه دیوار خوش قشنگه شبیه نشه با گل نمی‌کنی وارشی خودم دارم اخترو من اینا دوست من نصب دامادام کمک میکنه کارتای <سؤال> <معش> <تصفيق> عروسی، به به! خانم رستمی با برقنش میجراج <معش> میکنه. این عشاگه. این عشاگه. یلا سریع. این عشا. احش <معش> کار شروع <معش> میشه. سعید دم خونه دوفتان. ساعت و مصطفی توی فرش فروشی هم کار میکنه. سرداخل از دست سعید و حمید عصبیه شروع شد عزیز من من چقدر بنویسم و خط بندنم اینا اصناده دولتیه اصلا میدونی چیه من وقت ندارم آقا هاژاقا خواهش میکنم هاژاقا همین هاژاقا رو نیلوزه سعیدم پاهم میشه نیلوفرم کارت میده به دوستاش. سعید و حمید با ماشین سعید رستوران می میرسن و توقف میکن. نگهبان نمی در تا اونا رو میبینه میدوئه پیش صاحب رستوران صاحب رستوران نگران میاد دم در جلوی سعید و حمید میگه ما غذا روسی نداریم آقا برکت حیات خونه باغ ساعت چی میزا آماده چه جوری دخترا روی میزو مرتب میکن ساعت خوشحال بشکن میزنه و گلدونی رو جابجا میکنه نیلوفر لباس عروس و جلوش گرفته و خودش رو توی آینه نگاه میکنه مادرش براش اسفند بود میکنه و میخنگه خواهرها به کمک بقیه فامیل سفره عقد و چیده بروه موسیقی کیبوردن، برزن، تنبکی و میتو سعید و نیلوفر میاد سعید و شلوار سفید پوشیده نیلوفر هم لباس عروس نیشه ساعت چیم دم در با سعید دست میده آلما وست اتاق میرخسه فیلمبردار با هیجان مشغول فیلمبرداری از ورود عروس داماد با ورود اونها همه جلوشون پا میشن و دست میزنن از همه مهمونا پذیرایی میشه سعید و نیلوفر میرن روی صندلی مخصوص خودشون میشینن دایی و زندای نیلوفر هم خوشحال دست میزنند مستفا و اختر و عباس هم دست میزنند اصغر اسفند میکنه. مهین نقل می پاشه روی سر عروس داماد اختر برای خانم روسمی و برادرش پشت چشم رازوش می آه. از ازقدر یه چایی برای سردختر می کن سعیدن پهلوشه آشرت همینه که شناتنامهاش باید باش چاش پسش آقا سفا جونم بعد لازم هر دو تاشون ساعت ده سر جان سلام علیکم طرف لازمون کردی مشرد منور مبارک باشه ان به نم خوش بره به سلامتی آقا جی من شناسنامه آقا سعید میخوان خب برو بهش بگو بعد نمی میگه تا شناسنامه نباشه خطبه رو نمیخونم برو بهش می من میام خوب من واقعا شرمنده شما موقعی که این جاهاز آوردن با راخر دیگه خیلی این دردی دیوارا رو خراب کرد آقا آوردن که مسئله نبود شما خود تشریف داشتی بردنش آقا باز نمت زدن همه در دیوار رو صف کردن بردنش؟ بله آقا چه بردنه؟ نصف شب عین دزدا هی میگم خانم رستمی آخه این موقع موقع جهاز بردنه ساعت حالش بد میشه مصطفی و رفعتی زیر بقلشو میگیرن و میارنش داخل امارت همه دارن خوش میگذرنن که یهو اونا رو میبین. خانم رستمی زیرچشمی ساعتی رو نگاه می اختر, اختر از روی صندلی بلند می شه رو همونجا می میخوان می خوان وانمود کنن که مشکلی نیست. هم ساحتچی هم مستفا به همه لبخند می زنند. اما نوازنده ها متوجه غیر عادی بودن عوضا می شد مصطفی ساحتچی رو دلداری میگه که اخ بایه لیوان می بلند شو بلند شو شو می دهنم رفتی عروس رو ببری آرایشگاه چیز مشکوکی اونجا ندیدی اختر نگاهی به روستنی مثلا چی؟ مثلا جهاز خونام روستنی هم که گوش دیز کرده ای با خاک آلم راست میگی آقا جون. جهاز اونجا چه کار میکرد؟ همین میاد برای سر عروس دامان همید جان؟ پس چرا خود رو نمیخونه؟ جش مدر بچه ها فکر میکنم موضوع خرابه بگو بخونه دیگه خیلی خوب. شناسامه آمد کو؟ اونو میگه دفعه اولتونه. شناسامه آمد نباشه نمیخونم. امید بلند میشه میره پیش ساعت چی؟ خب آقای ساعت چی شناسامه سعید لط میکنی؟ باریون بال کاره. عاقبت منتظره بی خود کرده با تو. خانم روسنی بلند میشه سمت اون. شاید مشکل که حالتون خوش نیست. اتفاقی افتاده؟ کانو ما تازه اینکه اتفاقی افتاده چوبو که برداری ها دوزه حساب کار دستش میاد من حسن با شما حرفی ندارم میزم های اون برندگو دو برمیدم مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین اولاً به افتخار این دو گل نوشکفته یک کف مرتب بزنین برستنگردی دست نمیزد <تصفيق> بزشونه بزشونه بز بزه جوب و من این آقایی که اینجا این نیست. چرا چون خائنه چون ایشون تصمیم گرفته با این خانم زرنگ آقای منو ببرن ایشون میخواد بره نه چرا در خونه این خانوم بشه آقا من معدب باشم عباس هم که سن کلانتر بیان دستگیرش من از شما شکایت دویم من از این, از این ودیف شاکی هم ناست میگه چی خیال کردی فکر کتی من آب عروسی به هم نریزه عباس رو میده خانم رستمی یه گلدون برمی‌داره. سفر عقد به هم می‌ریزه. خانم رستمی دوباره صاحبچی میگرده که گلدون رو بکوبه تو سرش. صاحبچی فرار می‌کنه. همه به هم ریختن نیلوفر از ناراحتی ناخونشون رو می‌خوره. برای وساطت میره مصطفی با دایی درگیر میشه. عسكر هم اومده. حمید می‌خواد جداشون کنه. ماشین عروس نمیتونه بره. افراد دو خانواده به جو سعید نیلوفر توی اتاق جناب جعفر میخوان توضیح بدن. ساکت. ساکت ساکت بابا ساکت بفرماید بشین آقا بفرماید بشین آقا بفرماید بشین عزیز من بفرمایید بشینید بفرمایید بشینید به بشین. بشین. بشین. خدا آقا هم دیگه از این کلان داریم میرم از دست شما چقدر بیا و روی شکایت شکایت و شکایت کشی بگی بس. هم ردیف من همه طرفی گرفتن و رفتن من هنوز در گیر این پربندم بسته بابا چقدر آخه جلسان جلسان ساکت باش آقا بفرما بشید بفرماید آقا بفرماید آقا بفرماید ساکت باشید اغزیز من آخه چقدر شکایت و شکایت کشید چقدر بیاه روی یه خوردم به فکر این جفو آباشین چقدر به احترام شما هیچی نگن ای بابا سرکار احمدی اونا چی دسته دا بلبان این با داشتن که همدیگه رو میزدن ما گریفتیمش واقعا که؟ واقعا که؟ دوا سر چی بوده؟ فکر کنم سَرین بود که عروس دوماد باید کجا زندگی بکنه. خجالت داره، خجالت داره. چه عفری این زن دیوانه است، داره. اگه من مردن به همه بگو قاتل منی. من میگم من مردنی؟ لب گُ، لب گُ، لب گُ. تلفن رو به دوباره همه چیز باهوش میارم مادر. نیروی ندارم، نیروی به لباس عروس حساسیت و منفعت و سایه از هر چی لباس عروس و عروسی اون من دیگه تحمل ندارم خودم رو میکشم خدا نکنه اتفاقا امشب چقدر این لباس به شما میومد سعی میکنه سراسین پارش رو هم چی جدی میگی خودم دوختم فقط این مادرتون این دستتونی که میکشتید این پاره شد من خیلی نارد چیم شما گرسنتون نیمز یه ساندویچ این بقله برم یه ساندویج برشون نه چیزی نمیتونم بخورم سنگینم مثل من و یه همه شما عروسی که مون خشتا. رسی شما شمانا ها رو چیکار میکنید ؟ شام شام که شام که نمی خورم میدونید چاق میشم. سورا یه سراشپز داره. دستور بش میدم برام یه بوقمون سرخ کرده میاره با دو تا تخمغ نیم رو چنارش. اون بوقمون که دوست نداره. اون دو تا تخم روغ میخوررم تلفن شما باز کفش رو در میاره دم گوشش میکن. <تصفح> هلو بله. سراشپز نه میخواد با شما صحبت بکنه حلو میگه با شما چیز نمیخواد سفارش بدیم؟ میرسی بود حالش بوده همیند از اتاق بیرونه بچه ها بابا اینا هم دیگه ها تیکه پاره کردن اون تو چون نشتی اینجا داریم میخندی از رفت بابا چیه تلفن چیه چون که جهده بگیم ما هم بخندیم چاپ اینو اینجا که جهیده یا آقای تلفن میزنه بان اتاق جعفر این بار جعفر ایستاده در گوشه خانم رستمی یه چیزی میگه و ساعتی و عباس که نشسته اونها اصلا نمی‌خوان بشنو تش چی میگه تش در کله قلمی باند شد خیلی متشکرم خیلی متشکرم آقای ساعتی خانم رستمی مطلبی دارن که عنوان میکنن خواهش میکنم بفرمایید نه نه نه جعفر باش بگوت چه نه جنر از همونجا بایستدن بفرمان ما میشنفیم بفرمان کن، خواهش میکنم آقای سحچی، من از شما واقعا معذرت میخوام میدونید خب من یه مادرم منظور بدی که نداشتم باشه چشم جهیزیه رو میبریم خوره سعید آقا که خیال شما مراه داشت پس دیدی که من مقصر نبودم کامیون نیروی انتظامی باز در معیت دو سرباز جهیزه رو جابجا میکن ساعتچی توی کابین ایستاده و فاتحانه سرشو از دریچه سخف کابین کامیون بیرون آورده و لبخل میزنه باز در حضور رفعتی عصبانی جهیزی از پله بالا برده میشه ساعتچی رفته عباس، دایی، تا کارگرم سر تفتیم آخه ما خسته شدیم خا با وارد میشه. خواهرای داماد هم پشت سر میشه حمید یه کارتن کارت خالی میکنه. ساعتی باز به همکار فرش فروشش کارت عروسی داده از مغازه بیرون, مغاز بیرون. سعید و حمید باز به همون رستوران. صادق از مغازه زود میاد بیرون. شما کار زندگی سعید و حمید هول میده. آشپزها و کارگران با ملاقه به اونا حمله میکنه روی دفتر خونم سردفتر عصبی دفتر, دفتر اصلا رسمی بود بلا سرش دارد میکنم پیر فرق دارم که خیالا چما راهن بشه آجابا خواهش میکنم آجابا گوش بدید شما یه لحظه اما آه ما شما تصیل نداریم که رجب او پیتر نفتر بیار تا من ایجا یک سه آزمایش میکنی به زور دیگه سر نوازنده ارگ شکسته ارگشم ترک خورده دست تنبکی آسیب دیده و گیتاریست با دست شکسته میزند. بعد از اعلام همید سعید و نیلوفر سریع وارد مجلس میشه. هیچکس هیچ کس پاشون بلند نمیشه فقط خواهر سعید دست میزن. ساعتچی که دو تا دامادش کنارش نشستن لبخندی به خانم زمانی و برادرش میزنه اونا هم باد میکنن و نگاهی به اون طرفی میکنن ساعتچی و زمانی جوری به هم نگاه میکنه که انگار قراره با هم دوئل کنن مصطفی یه چوب زیر کتش قایم کرده که یواشکی به خاندایی نشون میده خاندائی هم آروم از جیبش زنجیری بیرون میاره و نشون میده عسكر میوه میاره میخواد جلوی ساعت چی بذاره که یه سیبی رو روی زمین میافته باشه میان صدا همه از جا میپرن و گارد دعوا میدید چیزی نیست چیزی نیست یه سیب بود دیگه از باش خواب افتاد چیزی نبود عسكر برداره رو عقب بده بفرمایید می‌خاشم راحت بشین بفرمایید بفرمایید داشم بفرمایم شما بفرمایید همه آروم میشینه اسخر می گروه موسوی حسابی ترسید آقا بخونید دیگه شناسنامه ها رو لود کنین. آقا خواهش منم عروس خانم هم بار اول بله رو بگه تا قائل خط بشه. قائل چی؟ آقا عروسیه. بله بله بله همونطوری که شما فرمودین عروسی شناسنامه ها رو لود کن. بله چشم. شناسنامه عروس خانم. آقا داماد. محت... چشم. حمید بلند میشه و پیش ساعتی میره؟ آبا ساعت چی؟ شناسنامه سیدو لط می‌کنی. ساعت چی؟ لبخندی تو صورت حمید میذنه. بعد نگاهی به زمانی و برادرش میکنه زمانی هم چپ چپ میباشه. یک 가지 دوباره وجود داره. بله. سیدون نوفر نگاهی به ساعتی میکنه و بالاخره ساعتی دست میکنه توی کتش تا تو شناسا رو ببین. بله. رو در میاره. آقای ربعتی صابونی سعید. سلام آقای ساعتی. سلام ویجی کوت مشکی آقای نوقدی دستگیری گلمنگولی آشپزخونه بفرمایید سلامت رفعتی حالا اسباب کشی که کردین این افتاده بود تو راپل دهو فکر مال عروس خانم باشه خوش به افتخار دو روشه گفته کبه مرا سلام سلام دست رفعتی زمانی براخت میشه ساعتی بلند میشه و میره بیرون. زمانی هم از پناهی بالا نگاهی میکنه که کسی پشت سرش نباشه نیست در اتاقکی رو باز میکنه بعده جهازیه رو آوردن اینجا زمانی هم اومده اونجا وارد اتاقک میشه جهازیه رو میبینه اوه، این مصطفی عمل تلمبار کرده رو هم دیگه. گفتم دوتا بودا مستقایی مایی که رو اینجا شغور نداره بیفته میشکنه دیگه این هم جفتش ساعت چه آروم به زمانی رو دیده بدنش به رحشه میاد اینا چیه؟ چی ها؟ این جلو جهاز مال چیه؟ ازرایل مده بودن خواستگارتون پس این تور ها خودتون کردین. خیاط شدی موروار دوزی میکنی چرا خفه خون گرفتی؟ به ساعتی هم نمی کنم خفه باچ میکنم, میکنم. اگر حاضرید بگید بله وکیلم نینوفر تور رو سرش رو کنار میزن با اجازه بزرگتره فامیل و مادر عزیز ها. با این خبر عصقر عروسی باز به هم میریزه همه بیرون میرن آقید هاج واج مونده اهل خانواده همه توی اتاق که جهی زمین ساعتچی روی زمین افتاده و زمانی فاتحانه بالای سرشه حمید عصقر کامیون بگیری جهاز از خونه نکبتی ببریم یک کامیون بگیریم دست به دست جهاز دختر خانم رستمی رو, رو دزیدن. جام جا بالش و زیر بغلش میزنه و میره. اسقرم وسایل رو که یهو مصطفی با چوب دستش به اسقر حمله میکنه. دوباره همه چیز به هم می‌ریزه. گیس و دیز کشی شروع میشه. وسایل از توی اتاق بیرون میبره مستفا با دایی گلاویز میشه. هر کسی یکی از وسایل دستش گرفته و میبره این وسط سید نیلوفر مغموم به ماجرا نگاه می‌کنه کاری از دستشون بر زمانی ساعتچی رو دنبال میکنه میخواد گلدون رو بکوبه تو سرش ساعتشی فرار میکنه میلوفر و سعید از ساختمون بیرون میان و ادامه دوای دو خانواده رو نگاه میکنه حالش ها و که پاره شده و حیات خونه پر از پر شده میلوفر آش میریزه و تقیب و گریزه مادرش و ساعتچی و نظاره میکنه گریان میشینه و تپر مرمان ناخونه خوبشون مریضوی روی افتاده و مادرش بالا همید حمید میاد تو اتاق اون لیاقت تو رو ندارم این پسر تو روی باباش نمیتونه وایسه بعد از این چه جوری میخواد زندگی تو رو تامین کنه حمید میپرسه چی شده دایی راست میگه به خدا به زی بازاریاب بیاد خواستگارید. میگه بازش خوبه بالا سنش کم زیاده خوشحالتی دیگه بالاخره داییت میگه وقتت میکنه ها خواب صورت میکنه. کابوس میبینه خودش داره زیر لب دعا میکنه با لباس عروس از پله های مخروبه پایین میره عروسی خودش با سعیده اعضای دو خانواده دست میزنه آقل دفتر رو باز و ورخ میزنه خودش برای دفت شر دوروبرش فوت میکنه مادرش عصبی. اگه قرص که هم دست وقتی که خستم قوطی قرص مادرشو بر میداره خاستگار بازاری پیر با دست گل میاد آقل ورخ میزنه دختر جون هراش بچار غیار هاموغازه باش گم نکی شما بازاری سویچ ماشین میده سعید قش میکنه خواهرهای سعید به نیلوفر می خندن. نیلوفر قرق عرقه خواستگار بله سرشه دو خانواده دوباره دعوا میکنن اسای ساعتی و زمانی میکشه نیلوفر از خواب می پره چرا مطالعه رو روشن میکنه اینا که بیزیشو برمیداره به چشم میذاره و مشغول نوشتن چیزی میشه. نیلوفر با نامه‌ای که نوشته برای سر مادرش میاد. مادر خوابه قوطی داروی مادرش رو برمی‌داره. نامه رو کنار آباژور بالای سرش میذاره و از اتاق خارج میشه. لباس پوشیده و کفش به دست آروم از پله‌ها پایین میاد و از خونه خارج میشه. راست به شیرینی فروشی خودشون میره و توی آشپزخونه مشغول به کار میشه. توی پله‌ها لحظه نیلوفر رو میبینه. سلام. چای بیارم خانم نیلوفر که با سر سلام کرده با سر هم میگه چیزی شده خانم نه. برو دو تنون بگیر الان همید آقا خانم میام الان برو دیگه چشم چشم, چشم. از میره نیلوفر خمیر شیرینی رو آماده میکنه قوطی داروی مادرش رو خالی میکنه رو میز یه آنم کپسول خمیرو رو میبره و تیکه تیکه میکنه کپسولا رو باز میکنه و پودرای داخلش رو با خمیر شیرینی مخلوط میکنه خمیر توی سینی آماده رفتن تو فر. فر رو روشن میکنه حالا شیرینی آماده شده اونا رو توی قوطی قرمز فلزی مرتب میچینه سعید که با همون جلیقه و شروار و که خوابیده از خواب بیدار میشه و تلفن جواب میده الو بله. نیلوفر کجایی؟ سعید که حالا کت و شلوار مشکی پوشیده با نیلوفر توی ماشینه. چیزی شده؟ منو ببرین یه جای دو، یه جایی که طبیعت باشه. روز خونه هرنده. ول. آقا کجا برم؟ برویم تا حالا به رود پایان کاج بلند پشت پرچین خیال مستقیم برم خوبه هیچ کس از ماهی شورید وقت نمیپرسه که کجا میره رودخونه اونو به دریای عوضیت میرسونه خدا حافظه این مردم خوشبخت خدا حافظه این ای آبنین خدا حافظ خدا حافظ. خدا حافظ. شما هم خدافظی کنید چش خدا حافظ این مردو بخوشبخت خدا حافظ خدا حافظ آقا خدا حافظ شما خدا حافظ خدا حافظ. وقتی من غمگین هستم هیچ وقت با من شوکی نکنید ده. زمانی با نام نیلوفر بالای سر حمیدی منو می‌داره چی چی تو نه نه نه دو, دو. چی نگو ملو. کجای بچم بگوی از بین درختان گلند راید درختان هماسی یک عمر مثل یک تک درخت پیر نگران پرنده ها بودن کاش پرنده یکم به فکر این تک درخت پیر بودن راستی چرا درختان نمیتونن برگاهز کنن هم تو درختان میگه والو پرک ندارن چرا نمیذارن پرنده های عاشق پرواز کنن چرا بالاشونو بستن چرا قلبشون رو شکستن از روی برگه خزان زدی رد میشه. درست میگم میگم ما خیلی داریم دور میشیم ها خانواده تون اطلاع داره زمانیو همین توی کلا بود دستم دست به دومت چه اب صاحب خدس میزنی ممکنه کجا رفته باشن خدس خودمه جناب سروایینا یه بارم با هم بیرون نرفته بودن باره اولشونه بار اولشونه؟ بله تو این بیس سال؟ دله. شوخی شرخی میکنی ادامه سفر سعید و نیروفر به دور امروز آخرین روزت دیدارمون باشه چه آرزویی داریم که من براورده کنم آرزی؟ نه آرزو نه خواهش میکنم بگی آخه ناراحت می اینجا کسی نیست آخه خب بعضی از خانوما حساسیت دارن آدم راجع به صحبت میکنم دیگه, دیگه من من همیشه می بوده که شما رو ببخشی دار خیلی ببخشی دا. دل تو دل میروفر نیست بدون اینک بگی میروفر وا میره همین ناراحت شده عینک بیزی رو از چشمش بر میداره و سعید با خوشحالی خیره به صورت نیلوفر نگاه ماشین در جای خوشاب و هوا بین درختان سرسبز توقف میکنه نیلوفر از ماشین پیاده میششه چه زیبا چه باشکوه سلام طبیعت زیبا سلام درختان سلام بلها شادمان و آزادانه در طبیعت میدوه و میچرخه. سعید هم که کیف نیلوفر دستش از ماشین پیاده میشه و به خاطر خوشحالی نیلوفر خوشحاله. نیلوفر از بین نیها میدوه و خودشو به برکهی کوچک میرسونه. سلام رود زیبا سلام ای و با شادمانی کودکانه دستش رو توی آب میزنه. سعید که از دور اونو نگاه میکنه روی کنده درختی میشینه. جعبه شیرینی رو توی کیف نیلوفر پیدا میکنه. شکمو نگاهی به نیلوفر میکنه. و یه شیرینی رو میذره توی دهنش رو با ولع میخوره. عیدادی میداد. خیر ورکا نیست. یکی دیگه هم میخوره. نخور. توی اون... با اومدن نیلوفر سری در جبر رو میبنده و توی کیف میزنه نیلوفر خوشحال میاد روی کنده درخت کنار سعید میشینه اصلا متوجه لپ پر سعید نیست امروز یه حس عجیبی دارم میدونید امروز من و شما به تاریخ عشق میپیوندیم سعید متوجه نمیشه یه قصه جافدانه. بله فردا همه درباره من و شما صحبت میکنند. میگن دو تا پرنده عاشق بودن کنار هم که با هم پرواز کردن به سوی عبدیت چرا ابدیت سعی نکنید منو منصرف کنید کیفشو به سرعت از دست سعید میگیره و جعبه شیرینی خیلی رو خیلی ساده و شاعرانه ما با هم شیرینی میخوریم فکر خوبیه این شیرینی ها شیرینی های مرگه دو تا از اینا رو که بخوریم به خواب عبدی میریم یعنی میمیریم؟ مگه تو این شیرینی ها چیه؟ سم یه سم قوی سم؟ ماشین کلانتری و مردم جلو شیرینی فروشی از که برای سروان جعفر و اعضای دفنه رو کنزیم دیدم یکی با لغت با مش به شیشه میزنه خدایت زلزله اومده؟ اومدم در باز کردم. دیدم خانم نیلوفره خب خیلی حالش خراب بودش کیفش گلومبه شده بود فکر کنم دوی کیفش تناب آورده بود خودشو به دار بزنه باش. شما تنابو دیدی؟ من من فکر کنم تناب آورده نمیخواد فکر کنی چشم بهت چی گفت آها به من گفت برو دوتا نوم بشیر خب گرفتی؟ بله بله این نوبایی هستش خیلی با هم رفیقیم ما دفتم گفتم بله مشهده اما با هم سمیمیه سمیمی میگفتم سمیمی. دوتا نون سنجاش سفارش داد بازم سنگت گرفتی صد بفه بد نگفتم نون تفتون بگیر بسه خانمی خودش برنز کافی چرت و پرت میگه ببینم آقا جون پسر منم اینجا اومد سعید آقا آه. بله اونم اینجا بود اونم بود فکر کنم اونم میخواست خودشو بکشه چرا خیلی گاز زیاد داد به ماشنش رفت با خانم گاز تند دا داد داد از این منم رفتن همید از زمین مغازه میاد بید. پیداش کردم جمسرم پیداش کردم این قدی خورسه شماست خالیه این <تصفيق> آخه چرا خوردین سعید که بلند شده بود به طرف ماشین آبا ما فکر بیارم شیرنیه مثل همیشه حالا من چه خاکی تو سرم کنم نگران من نباشم میریم دکتری چیز خوب میشم من نگران شما نیستم شما همه نقشه های منو به هم ریختی من قرار گذاشته بودم با هم بمیریم خیلی شاعرانه تو نامم اینطوری نوشته بودم حالا اگه شما بمیرین همه میفهمن من دیرتر خوردم خب میخوام بریم نامه رو پاره بکنیم بعد دوباره بریم از اول خودمون رو بکشیم این خوبه شوخی میکنی من سم خوردم بلش بریم یه درمونگایی چیزی آخه من نمیام من به این درخت به این طبیعت قول دادم که خداها بکشم اگه تو رو در واسه این درخت موندین خوانه خب بمونید من من میرم ببخشین درخت محترم مخترم ببخشی ای طبیعت زیبا بدرو. نیلوفر همونطور که روی کنده نشسته در قوطی رو باز میکنه و سری دوتا شیرینی میذاره توی دهنش سعید از دور اونو میبینه و برمیگرده قوطی رو از نیلوفر میگیره چرا چی کردی؟ حالا با همین. من دیگه شما را تنها نمیذارم بلنشین بریم خواهش میکنم زندگی برای من تموم شده است من نمیخوام بمیرم سعید به خاطر من به خاطر شما چی؟ بیا با هم بمیریم منو تو رو دروسی ناندازیم میمیرم ناراحت میشم. سعید خواهش میکنم. به خاطر میلوفر. سعید لحظه نمیزنهoverline کنده درخت. عجب. چیکرفتاری شدین؟ جعفر قوطی قرص رو به زمانی این قوطی قرص خواب‌آوره درسته؟ قچی اشاره. ولی یه قرص دیگه توش بود. چه قرصی؟ من نمیتونم بگم قرص خوبی نبود نمیتونم بگم یعنی چی خب ما بعد بدونیم چه قرصی این تو بوده یا نه که اگه پیداشون کردیم خورده بودن لاقل بتونیم پیشگیری کنیم یا نه نمیتونم بگم آقا نمیتونم بگم جفر اینا شاید دست به کردن پسر چیز خورد کردن میخوان تلفش کنن آخه یه گاییدون بده این داره زیادیا حرف ما بزنه ما داریم میگیم آقا که مادر جون میگی چه قرصی خورده بود داره گوشم بده زنگ اما ظاهرا ساعت چی هم شنیده خب این از اول میگفتیم مادر آه، آه، جفر، آقا پسر من با این قصه بخواد خودشو به کجا اسمش خودکشی نیست که و کاریه من یه دونه از این قصه میخورم سه روز پشت سر مصرب بعد رفت آقا بنز به آه، آه، آه، جو؟ سعید توی دستش و نفر از دل پیچه به خودش میگه اوه خواهش میکنم سعید بیا بیرون خانم من تازه اومدم اینجا التماس میکنم سید جام بیا بیروز پولم نکنی چه صافتی شد پولم افتاد اینقدر مادی نباش بیا بیروز سید اومدم خانم اومدم, اومدم. او سعید از دستشویی میاد بیرون و چشمشون تو چشمی هم سعید از سید ازت ممنونم حالا نیلوفر خانده ممنونم مامونا فقط یه چپ سارید ها اینجوری نستا سعید از جلوی در دستشویی کنار میره و میره سمت ماشینش اما این باز اوضاعش خالص میگه کم سارید خودش میپیچه خودش رو صفر نگه داشته که یه موقع اتفاق نیفته محکم به درخت تکیه میده اوه اوه انقدی اتفاقی افتاد نمیتونه درست واخره بله فلانタリ ساعتی و زمانی روی که پهلوی هم نشستند بفرمایید ساعتی دسمالی به زمانی میده قانون این پسر من خیلی دلبسته دختر شما بود من نمیدونم چه حسابی بود اینا با چه هم اینقدر بیقراری می‌کردن مطلب یه چیزی بوده ما نمیدونیم دیگه و الا این همه دختر واخه nilo خیرین به اون روی فرشت نمیدونه چی وقتی پدرش فوت کرد اون مغازره اداره کرد نمیتون این چقدر سخته یه عمرادم تو اون زیر زمین زندگی کنی بله درسته البته شما هم پدری کردی هم مادری حال زمانی دستمالو به ساعت <تص الان> ساعتچی عشقاشو پرک میکنه و دستمالو به زمانی بعد کردنه شما دعا کن بریگردن که <تص> عروسی بگیریم همه انگوش بده همه بمونن شما موند پیرن آبیه رو بپوش که بهت میاد منم اینو میپوشم که به لباس آبی شما بیاد نه این لباس که به شما نمیاد شما مشکر رو بپوشید نه این باشه عروسی که این بهتره که نه این دیگه شما باید بدین کاسه بشقابی از این سبدای تو تو آشباز کنه بگیریم چه؟ منو بدم کاته بوشقابی؟ خب بله برای که به تلتون زار میزنه خانومی پارچش انگلیسیه باشه چه ربطی داری شما که خودتون نمیبینی چقدر بد میشه تو این لباس ل من بعد میشم من بعد میشم من تو خیابون رام کردن دختره واسم تو چوجو پس چرا نمیهین دستشویی رفتن ادامه بدن شده باز نمیشه آخه من باید برم دستشویی میدونم این باز نمیشه خب یه فکری بکنی. قف با... این قفل قفل نکنید دیگه من میگونم من خوشالم اینو گیر کردن خب آخه،, آخه پس من چیکار کنم بدین یه جای دیگه آخه دیگه چویی نیست من برم آه، چه زنه دستپاشلफ्टी هستین من دست با لفتیم یا شما که اون تو گیه کردین نمیتونین بیاییم بیرون من رفتم نیلوفر میره نزدیک ماشه نیلوفر خانم نری خواهش میکنم نری منو اینجا تنها رو به شما میگن مرد به خودتون نگاه کردین توی دستشویی گیر کردین میلرزین و میترسین خب اخوی این عقلتونو به کار بنسین اون دروا نمیشه باز نمیشه باز نمیشه بین کنار تاپیتون به بگر. طرف در دستشویی میره و با شونه مو... چند بار در رو به تا. در باز میشه و سعید میونه. شونه و بازوی نیر به فرد درد آه. گرفته. دستا درد نکنه. فرشته نجات منی. داشتم خفه میشدم تو. خاک بر سرت کنم از سعید جدا میشه چی؟ چی گفتی؟ واقعاً که مرد بی‌عرضه بی لیاقتی هستی. حیف من که یه عمر نشستم منتظر شما. واسه میمیری؟ منظور تو چیه؟ منظورم اینه که بهتره بری بمیری. من که دارم میمیرم شما بهم سم دادین. وقت هم نمیکنی. اونم از روی بیشوریتونه که بیا جزه میلی سر کیف من شیر نمیرم دیدین میخونی. خیلی دارین میرین میرینا. من تون میرم بعد از 20 سال من تون میرم یا شما من تون میرم که 20 سال منتظرتون نشستم این دیگه برگه برین از پدرتون بگیرین بیاریم برین یه عروسی راه این یه حقیقتی که شما بی عرضه و بی لیاقتین نمیتونین شناختتونو از پدرتون اگر اگرم نوراحد میشیم بشین به جهنم مگه با بدبختی نرفتم الماسنا گرفتم گفتم بی بریم یواشکی محصر عقد بکنین گفتی باهت حتما لباس عروس تنم باشه نمیام صد سال دیگه نمیام یواشکی محصر مگه من مثل شما از پلالتون میترسم که یواشکی بیام محسن مگه من چه خطایی کردم چه خط بدبختم من چه خط بدبختم من من یه دختر ترجیده بدبختم که بیست توی اون زیر زمین نجازدم برای مردم گک درست کردم تا گک عروسی خودم درست کنم آره من حسرتی عروسی به دلم بوده موقع شما یه شناس دارم <تصفيق> از پدرتون نمیتونین بگیرین؟ برسید منو تماشا ک. همه دوستام شوهر کردم چطور شدن؟ همه به من میگید تو ماشین در مسیر برگشت از روی همون برگی خزان زده رد میشه. سعید عصبی رانندگی میکنه. کنه. این دفعه ثابت کنه که مرده نیروفر اشک میخوام. خونباغ خونه باغ ساعت همه به اتفاق جناب سرمان از کلانتری برگشتم همه مری 20 میدوشت. اینجا برای چی اومدی؟ بارو پشت پلچه همه جورو برای پیدا کردیم شماست به هم بگذارم اجلی نکنید، خواهش می کنید اجازه بدید؟ مأمورا و برگوی دور امارت می چند نیروفر سعید. از بالا اونها رو دیده بالا برو که معموری اونو پایین سعید، با دبی نرفتند وارد. بروی نگاه. اینو ببینید، کوچکان وقتیش میکشند، هم خداوند کشام این دختر رو. بروی نگاه. فقط بگو بچه من سلام مادری هنده. آقا ایساعشی، سعید ساعت آقا، اجازه بدید. من می که شما اسبانی هستید، به شما حق میدم. بینام گفتم، هر کس هدیگه هم بود اسبانی می شد، ولی این راهش نیست. بیان پایین با هم صحبت می کنیم موضوع حل میشه. شناسم کجاست؟ اگه دادی که دادی اگه ندادی خونه تو با آتیش بکشم تمام فرشتو میسوزونم بچه نادون شناسنامتو میدم با فرش کار داری و بابا ما توافق کردیم خس... دوباره عقل تو دادی دست اون دختره دیوونه دیوونه؟ دیوونه؟ شناس امیدین؟ یا قدم صدا میکنید مراحق کنن تمام میره توب و در بالکانو میبنده ملوفر نگران پشت در چلو. سعید خسته میره سر صندوقچه دنبال شناسته حال نیلوفر اصلا خوب نیست نمیتونه خودشو کنترل کنه میفته سعید همچنان مشکل سرم که میره سعید بی حال تکیمیده به پشت من سرم که سعید سعید اولین بار تو که از من خوشت اومد اصلا برای چی من رو دوست داریم واسه شیرنیات خیلی خوشمست هست سعید جان پسر بابا سعید پچره نمی اگه دست به وسایل من بزنی یا میام تو با سمن. ساعتی بوده جدا میره دوباره کمر بندش باشی، سخته داری میکنی؟ حال خودشونو نیستن اونا نمیفهمی؟ به خدا قسم بلایی بسرین دو تا جوون بیاد، یک راس میفرسن زندان. پسر خدا به کسی دخلی نداره. به من دخلی نداره، سرکار احمدی. بالا قربان. به دستاش دست من بزن. سعید با کمربند میاد روی بالکر اینجاست بیا کمربندت اینجاست بیا بگیرش بیا برو بیا برو با شما کار داری بیا برو جلو باشیم دفعه کنی جفت حالش خرابه نف نریزه رو من من آتیش بزنه نه باشم نه از نیرو بگیره بگیره حالی نیرو رو ازش بپرسی بیا جبرت بفنی بفنی بیا بیا بیا بردار بزن بیا مردت چلساله رو بزن تو بزنی من چیزی نمیگم پدرمی حق داری اما اینا خیال میکنن من از شما میترسم اینا میخندن وقتی من شما رو کول میکنم به اینا بگو به اینا بگو چرا من به شما احترام میزنم به اینا چی کار داری اینا امروز هستن فردا نیستن من میمونم و تو سعی من با بدبختی تو رو بزرگ کردم سعی با و نزدیک میشه برای که اگه منو کل کنی پوری نمیشه من مریض میشم کی باید به من برسه کی باید منو کول کل کنه سره جان من هم تو رو زیاد کول کردم یادت بعد مادر خدا بیا مرزه شبا از خواب میپریدی بهونه مادرتو می گرفتی. من خرمی میشدم کولت میکردم دور اتاق میگردم که یادت بره کی رختاتو میشوست کی برات غ درست می کرد بشکنی با این کمرا یه تو زده باشه سعید رفته تو دهه ما رو با دیوار داریم صحبت میکنیم دو بابا شا ملترم چونه خون دختره؟ نه آجوهای خیلی خود آقای دو بیدم کنید موسفا به استقباد موسفا و به زور میشونه پرست نیزی که درگیه آمده برو برو برو برو برو برو برو برو برو برک آجوها بفرمین بفرمین یه برسته بگه آقای یسته اشی ساید آقای بیا ببین آقای دو بابا بگو دیگه بگو دیگه بابا اونجا هزار تا جنس ناجوره نمتونم بگه دامسته کرفه هسابا میتونه میشه سعید در دربه نفت باز میکنه بقیه فقط نگاش میکنه یه دقیقه وقت داری نیلوفر بی حال افتاده کفه اتاق یه دقیقه نیلوفر بی کنی. بابا حرف بزن بابا حرف بزن توی در وی دیگر رو میشنوه که توی لوله بخاریه لبخند میزنه و میره سراغ لولو بخاری در پوششو برمیده یه آلم پول میندازه زمین بازم پول و دفترچه های بانکی جور و جور همه رو میندازه و بالاخره شناسنامه. سعید خیس عرق و خسته ولو میشه کف و اتاق کنار نیلوفر بیرون همه منتظرن اما خبری از عروس داماد نیست عروس داماد حالا با لباسای عروسی روی صندلی نشسته به هر دوشون سرم بسته جفر بالا سرشونه همه حضور دارند و آروم نشسته برزمه آقا دامات می باشد که این در مطالب آن را پرداخت نماید شما را به عقد دائمی آقای سعید ساعتچی در بیاورم وکیلم نیلوفر تور روی سرشو کنار می زنه. همون عینک بیزی هنوز رو چشمشه سعید نگاش میکنه بقیه هم منتظره نیلوفر بغض کرد از که منقل ازفن دستشه میگه بگو دیگه نیلوفر نگاهی به مادرش و پدرشوهرش میکنه که کنار هم نشستن و منتظرن نگاهی به دای. دایی دایی میگه بگو دیگه سرکار خانوم نیلوفر رستمی بنده وکیلم بگو دیگه همه همدیگه رو میبوسن رفعتی و آقه. حمید و آقه، مهین و زندایی، اختر و زن رفعتی، مصطفى و دایی، عباس و ازکار، سرکار احمدی هم مثل همیشه میخنده و نگاه میکنه ساعتچی خوشحال وسط اتاق حرکاتی انجام میده همید ظرف اصل و از توی سفره بر میداره و جلوی عروس و داماد میگیری زمانی که لباس آبی و شال آبی پوشیده پشک بریزه سعید انگشت کچیکه دست رو توی اصد میزنه و به طرف دهن نیلوفر میبره نیلوفر دست سعیدو بو میکنه و با خنده میگه دست خوب است. از وسط اتاق میچرخی آلما هم اون وسطه مصطفى و دایی هم شادمانه میچرخم ساعتشی هم با اساس به اونا میپیونده و؟ بله بعد میری میشینه پهلوی زمان شاید هم پیرشن ای اینا که به هم بسیدن ولی ما تار چرا خانوم این حرفا چیه؟ ما تازه به هم گم و خیش شدیم میخوایم با هم رفت و آمد بکنیم از این نظر تو حسنه با سر نره ها <تصفيق> چقدر این لباسا به شما میاد این لباس هم به شما خیلی میان <تصفيق> <"É. تصفيق> اون دفعه شما گفتی به پوش بوشیدم چون شما گفتی منم بوشیدم <تصفيق> ما همیشه جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار خوب برنامه با ما همکاری کردند و خدمت شما عرض کنم که فرشاد آذرنیا سردبیر و تهیه کننده این برنامه بودند و بنده بهرام سروری نژاد به عنوان نویسنده و گوینده انجام وظیفه کردم امیدواریم که بتونیم رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب بکنیم با ما در ارتباط باشید پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید راژیو فیلم دیگر خدا نگه